به نام خدا سلام و درود بر شما همراهان شبانه خلق افسانهها ها از روزگار ابتدای بشر آغاز شده اگرچه تاریخ پیدایش افسانهها ها رو بیش از سه هزار سال پیش دونستند اما افسانهها ها مقید به تاریخ معینی نیستند. افسانهها ها چیزی فراتر از خیال بافی یا پژواک سنت های گذشتن افسانه ها بیش از هر چیز با اصاب رؤیاه که اونها رو پرداخته گفته یا شنیدن رویاهای سرشار از عدالت، زیبایی، سر، عشق، آرامش و رهایی برمی هزار افسان افسانهای ای رو از سرزمین ویتنام تقدیم شما میکنیم به نام بز جادوگر برگرفت از کتاب هدیه کلاخا ترجمه عبدالسالح پاک و تنگرگولی یلگی روزی از روزها در سرزمین ویتنام، مردی داشت تنها دخترش رو به خونی بخت روانه کنه. برای همین هم، تمام اقوام، خیشان و آشنایان و حتی قریبه ها رو به عروسی دخترش دعوت کرد تا جشن بزرگی برپا کنند. کویو، جوانی که در یکی از روستاهای نزدیک زندگی میکرد وقتی این خبر خوش رو شنید خوشحال شد و برای شرکت در عروسی آماده شد. کویو بهترین لباسش رو پوشید، کفشای تمیزی به پا کرد و بعد برای اینکه توی راه احساس تنهایی نکنه، بوز خودش رو هم همراه برد و به طرف اون روستا برافتاد. کویو کمی که راه رفت، پیرمردی سوار بر اسب از پشت سر بهش گفت: ای پسر، این بز زبون بستر کجا میبری؟ کویو در جواب پیرمرد گفت من به عروسی دعوت شدم، تنها بودم بزم رو هم با خودم آوردم، اشکالی داره؟ پیرمرد مرد خنده ای کرد و گفت <تصال> نه، چه اشکالی اتفاقا منم دارم به همون عروسی میرم پس راهمون یکیه، خوشحالم که یه همسفر پیدا کردم بعد هر دو به راهشون ادامه دادن و پیره مرد کمی که راه رفتن خسته شدن پیره مرد که حوصلش سر رفته بود دید اگه بخواد هم پای کویو راه بره تا فردا صبحم به عروسی نمیرسه بنابراین رو کرد به کویو گفت کاش این بز رو همرات نمی آوردی اگه بخواییم همینجوری راه بریم شاید تا صبح هم به عروسی نرسیم. این بز همه ی وقتمون رو تلف میکنه. کویو که جوان شوخ بود به شوخی گفت <تصفيق> بیا با این فکرها اوقاتمون رو تحت نکنیم ما که عروسی ندیده نیستیم که علاقه داشته باشیم قبل از شروع عروسی به اونجا برسیم اصلا اصلا بیا برای کودایی راهمون و رفع خستگی با هم حرف بزنیم پیرمرد پوس خندی زده گفت با... <تصفيق> من از چی عرف میزنم تو از چی؟ من میگم چرا بزت رو همراه آوردی تو چی به من میگی؟ اگه اون رو نیاورده بودی الان با هم سوار می شدیم و به موقع به عروسی میرسیدی خویو نگاهی به بزش انداخت و به پیرمرد گفت این بزی که میبینی یه بز معمولی نیست پیرمرد با تعجب گفت منظورت چیه ها؟ بوز معمولی نیست منظورت چیه؟ کویو جواب داد منظورم اینه که این بوز مثل بوزهای دیگه نیست اگه لازم باشه میتونم سوارش بشم و مثل باد به طرف روستا حرکت کنم تازه تازه حتی میتونم با تو هم مسابقه بدم و زودتر از تو به عروسی برسم آخه این بوز یه بوز جادوگره بعد هم نگاهی به انداخت و آهسته گفت پدرجان این حرف رو هم به کسی نگو که اون وقت دوست و دشمن به دنبال این بز بیچاره راه میفتن تا اون از من بدوسن فهمیدی یا نه پیرمرد حاج و واج به کویو و بوزش نگاه می کرد. کویو که سکوت و تعجب پیرمرد رو دید به اون گفت چیه باور می‌کنی این بز یه بوز جادوگر باشه ها پیرمرد به حرف اومد و گفت بیرو در ویسی بگم پسر نکنه عقلت پاره سنگ برداشته آخه مگه میشه بزم جادوگر باشه و کسی رو روی پشتش سوار کنه آه؟ کویو به تندی گفت بله میشه چرا نمیشه بیره که حس کنج کاویش گل کرده بود به کویا گفت پسر جون اگر راست میگی بیا با هم مسابقه بدیم ببینم کی زودتر به عروسی میرسه قبوله؟ کویو بلافاصله جواب داد قبوله من حرفی ندارم پیرمرد که دید میتونه با شرط گذاشتن بذر و صاحب بشه به کویو گفت بسرجان مسابقه بدون شرط لذتی نداره بهتری یه شرطی بذاریم قبوله کویو جواب داد قبوله اما چه شرطی پیرمرد مکسی کرد و گفت شرطمون این باشه که اگه تو زودتر به عروسی رسیدی اسب من مال تو و اگه من زودتر به رسیدم بز تو بال من. کویو نگاهی به اصف لاغر پیر مرد انداخت و گفت پدر جان اصف تو زیادم به در بخور نیستا و از لاغری داره از بین میره ولی بوز من با شیرش میتونه یه خونواده رو سیر کنه. پیرمرد از حرف کویو ناراحت شد کمی سکوت کرد و چند دقیقه بعد گفت پسر اگر چه به من لاغر و مردنیه اما باز حاضرم که با بز جادوگر تو مسابقه بدم خلاصه، اونا قرار گذاشتن هر کس زودتر به عروسی رسید برنده مسابقه. باشه به مرد سوار بر اسب لاغر و خستش به تاخت رو به روستایی که مراسم عروسی در اونجا برگزار می شد رفت کویو هم از بیراه هایی که در جنگل می شناخت رفت این بیراه ها خیلی زودتر اونو به عروسی می رسند خلاصه به بیراهه زد و به طرف روستایی محل عروسی برافتد خیلی زود به عروسی رسید بزش رو در پشت خونه به ستونی وست و خودش هم به طبقه بالای خونه رفت. چند نفری با چای و شیرینی ازش پذیرایی کردند. کویو چایش رو خورد و شیرینی رو نوش جان کرد اما از اومدن پیرمرد خبری نشد. کویو برای اینکه حوصله‌اش سر نره شروع کرد به صحبت کردن با این و اون اما باز خبری از اومدن پیرمرد نشد که نشد. <تصفيق> بود که پیرمرد خسته و گرسنه و تشنه از راه رسید از تا به اونجا رسید نقش زمین شد پیرمرد با وجود خستگی فورا رفت و نگاهی به حیات انداخت تا مطمئن بشه که کویو با بزش رسیده یا نه هرچه بین مهمونا چشم گردوند اونا رو ندید بنابراین خوشحال شد و خستگی راه رو فراموش کرد و با غرور پیروزمندانه از پله‌های خونه بالا رفت تا یه کمی استراحت کنه اما همین که در اتاق رو باز کرد دهنش از تعجب باز موند کویو اونجا در انتظارش نشسته بود کویو هم که پیرمرد رو دید از جاش بلند شده با خوشحالی به پیشوازش رفت و گفت خیلی خوش اومدی چرا دیر کردی هم سفر نگرانت شدم ترسم خودی نکرده بلایی سرتون اومده باشه میبینی که از نگرانی تا حالا نتونستم بخوابم پیر مرد هنوز باور نمیکرد که این هم سفر جوونش باشه چندبار چشاش رو مالی دید که خود اونه و بز جادوگرش اونو سری به اینجا رسونده بل پیر مرد شرط رو باخته بود حالا فهمیده بود که بز این جوون قدرت جادویی داره بنابراین تصمیم گرفت هر جوری شده بوز رو از کویو بخره. بعد به روی کویو لبخندی زده گفت ای هم سفر جمون این بوز رو از تو بخرم. کویو در مقابل حرف پیرمرد گفت خودت که دیدی این بوز یه بوز معمولی عادی نیست بنابراین نمیشه روی اون قیمت گذاشت. بهتره از خریدن اون پدرجان منصرف بشی. ولی پیرمرد اصرار کرد و اصرار کرد تا اینکه آخر سر کویو راضی شد بزش رو به قیمت ده سکی طلا به پیرمرد بفروشه و خودش هم سوار بر اسب پیرمرد شد و به طرف روستاش بهراه پیره مرد فکر میکرد عجب معامله خوبی انجام داده و چه کلاه بزرگی بر سر کویا گذاشته اون از این کار خیلی راضی و مغرور بود و از خوشحالی تا تموم شدن عروسی توی اون روستا مون تا فرصتی به دست بیاره تا هنر بز جادوگرش رو به رخ دیگران بکشه خلاصه پیرمرد هر فرصتی که به دست میابر شروع به تعریف کردن از بز خودش میکرد اونقدر از بزش تعریف کرد تا اینکه که مهمونای عروسی از اون خواستن که قدرت بزش رو نشون بده یکی گفت تو که این همه بز من بز من می به ما نشون بده که این بز چطور بزیه یکی دیگه گفت من که چیز عجیبی توی این بز نمی بینم این چه بزیه خلاصه هر کدوم از مهمونای عروسی چیزی می گفت که حرفای اون رو شنید با خوشحالی گفت دوستان من دوستان من یه زین بیارین تا بر پشت بزم بذارم اون وقت میبینین که چطور مثل باد این بزم از اینجا حرکت میکنه هم همهی بین مهمونا افتاد یکی میگفت بابا این پیر خیالاتی شده مگه ممکنه بز بتونه مثل یه عصب با سرعت به تازه دیوونه یکی دیگه میگفت حرفای این پیرمرد جدی نگیرین اون حتما داره شوخی میکنه پیرمرد مهمونا رو به سکوت دعوت کرد و گفت اجازه بدید اجازه بدید لطفا گوش کنین اجازه بدید بعد زین رو پشت بز گذاشت بز شروع کرد به ناآرامی کردن حالا نپر و کی بپر پیرمرد سعی کرد که سوار بزش بشه ولی بز اونو روی زمین انداخته و این کار باعث خنده و تفریح حاضران توی مجلس عروسی شد صدایی از میون جمعیت گفت ددین گفتم این پیرمرد شوخی و مزاح میکنه نگفتم <تصفيق> صدای خنده تمام فضای خونه رو پر کرد پیرمرد باز هم تلاش کرد روی پشت بز توار بشه اما باز هم بز ناآرومی میکرد و اونو مکم به زمین مینداخت و باعث خندهٔ مهمونا میشد آخراسر پیرمرد فهمید که نخیر نه نه نه این بز درست بشو نیست این بز نه تنها جادوگر نیست بلکه از یه بز معمولی هم بدتره بیچاره پیرمرد با غصه و ناراحتی با پای پیاده مجلس عروسی رو ترک کرد و به طرف روسای خودش برافتاد از بس که راهش دور بود هنوز هم به خونش نرسیده راستی؟ اگه شما پیرمردی مردی رو توی رایی دیدین بدونین که اون همون پیرمرد مرد ماست. ما این چه که براتون نرد کردم افثانه که بز جادوگر بود از سرزمین ویتنام امیدواریم در هر جای ایران عزیز که به سر میبرید لحظاتتون سرشار از سلامتی آرامش و نشاط باشه و همواره افثانه رو که از پدر و مادر بزرگامون در این سرزمین پرناور شریدیم پاس بداریم و حکمت و دانش اونها رو درک کنیم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بود ویراستار سهیلا کریمی اجرا مهران دوستی شیما کمیلی زاده و تیگه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر بدرود